شاهزاده بازرگان رودخانه پوران سالها قبل از زمان حکروانی سومرایی ها رودخانه سند نه توی مسیر کنونی خودش بلکه یک کمی به طرف شرق جاری بود. البته توی اون زمان این رودخونه به اسم پوران مشهور بود و توی سواحل اون بنادر زیادی وجود داشت. به همین دلیل یکی از مراکز اصلی بازرگانی بود. یکی از بندرهای معروف اون زمان بندر علی بود. یه روز شاهزاده ی بازرگانی که اهل کشمیر بود محموله های خودش رو از طریق این رودخونه از کشمیر به کش میفرستاد. اون همراه همسر و همراهاش سواره قایق غایق شده شد و روی آب رودخونه در حال حرکت بوده. شاهزاده قبل از این سفر، همه یه همراهاش هشدار داده بود که اگه کسی از دستوراتش سرپیچی کنه هر جا که باشن از کشتی پیادش میکنه. شهستاده بازرگان همراه با این ناوگان که شامل 25 کشتی پر از اجناس مختلف بود و همه یه بنادر سر را میزد و توی همه جا معاملات بزرگی انجام میداد. این ناوگان بعد از چند ماه به بندر علی رسید و توی اونجا شاهزاده دستور داد که کشتیهاش برای مدت طولانی تری توقف کنند. روزی از روزها، بازرگان و زنش مشغول قدم زدن توی ساحل رودخونه بودند. چوپانی رو دیدن که داشت گله بوزهاش رو آب میداد. اونها در کمال تعجب دیدن که چوپان درست مثل بوزهاش خم شده و با دهان از رودخونه آب می‌خوره. بازرگان به زنش گفت: خلایق هرچه دایق اگه اون از خانواده بهتری بود هرگز این کارو نمی کرد زنش جواب داد فکر نمی اینجوری باشد میگن یه مرد درست مثل همراهش رفتار میکنه. این پسر هیچ همراهی به جز بوزهاش نداره پس مسلما مثل اونها رفتار میکنه بازرگان از شنیدن این حرف ناراحت شد و با خشونت به زنش گفت حرف بیهوده نزن. وگرنه به خاطر اطاعت نکردن از دستورام تنبیه میشی. زن جواب داد، قربانت بشم، حقیقت رو باید گفت. بحث داغی بین اونها شکل گرفت. نه بازرگان و نه زنش، هیچ کدوم زره از عقیده خودشون کوتاه نیومدن. بازرگان که حسابی از شده بود، رو به زنش گفت، زن خودخواه. از اونجایی که تو از اطاعت کردن از دستورهای من سرپیچی می باید تنبیه بشی تو رو طلاق میدم و باید اینجا و توی همین بندر بمونی تا عدب بشی بازرگان تنها به سمت کشفی رفت زنش فریاد زد بازم به تو میگم که اشتباه می رفتار عجیب و غریب این چوپان از تربیت خانوادگی نیست به همراهاش بستگی داره برو به جهنم آرزو می کنم یه روزی برسه که تو مجبور بشی کفشقه این چوپان رو حمل کنی. بازرگان توجهی به حرفای او نکرد و به طرف کشتی رفت. نافگان برای بازگشت آماده شد و زن بازرگان توی اونجا موند. اون زن عاقلی بود و همونجا تصمیم گرفت که نقشهی بکشه و به اون بازرگان مغرور و از خود راضی درس خوبی بده. پس به چوپان تعظیمی کرد و گفت چوپان عزیز با من ازدواج میکنی؟ چوپان از اینکه میدید یه زن اشرافی به اون پیشنهاد ازدواج میده جا خورد اون توی تمام عمرش زنی به این زیبایی ندیده بود و توی خواب هم نمیدید که یه زن به زیبایی یک فرشته با اون ازدواج کنه خودش رو نیشگون گرفت و چشمهاش رو مالید تا مطمئن بشه که خواب نیست بلاخره موقعی که زن زیبا توازاش رو تکرار کرد، اون بدون معطلی و تردید گفت بله، بله خانم محترم، حتماً. چوپان زن رو به کلبه درویشانش برد و بعد خودش رفت تا بوزهاش رو به طویله ببره. وقتی که برگشت، قصه اون و مرد بازرگان رو شنید. با یه صدای آروم و غم انگیز به زن گفت من چوپان فقیری هستم و نمیتونم تو رو خوشبخت کنم. اگه دلت میخواد با من توی این کلبهی درویشان زندگی کنی، حرفی نیست. اگه هم بخوای به هر جا بری، آزادی. مانعت نمیشه. زن جواب داد، من هیچ جا نمیرم و با تو زندگی میکنم. جوپان از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد. صبح روز بعد اونها به معبد رفتن و رسما عروسی کردند. به این ترتیب زندگی اون کاملا عوض شد آخه اون یه زن جذاب و زیبا و دوست داشتنی با رفتاری مهربون بود چند روز که گذشت زن گردنبند بند الماسی رو به چوپان داد و از اون خواست که اون رو به یه جواهر فروش بفروشه بعد اونها با استفاده از پول گردنبند بند کلبه رو خراب کردن و به جای اون یه خونه مجلل ساختن مرد چوپان برای اولین بار توی عمرش لباس های مناسب پوشید چند روز بعد یه معلم برای تدریس به چوپان استخدام شد تا اون بتونه توی اینجور خانواده ای زندگی کنه همچنین خانم برای نگهداری از بزها چوبان هایی رو استخدام کرد و تحت مراقبت دقیق اون زن عاقل از بزها دستابرت زیادی نصیبشون شد در عرض چند ماه چوپان جوان تحت نظارت و تعلیمات مادرگونه زنش و همچنین تعلیمات معلمش به یه مرد جذاب و امروزی و باز هوا تبدیل شد و توی شهر شهرت پیدا کرد. زن چوپان به معلم پادش خوبی داد و طوری برنامه ریزی کرد که یه مرد درباری و ثروتمند و متنفذ اون رو تحت حمایت خودش قرار بده. به این ترتیب چوپان همراه این مرد کم کم به دربار و جاهای دیگه راه پیدا کرد و از مزایای این همراهی بحرمند شد. وقتی که چوبان به یه مرد تعلیم دیده و فهمیده تبدیل شد همه به اون حسودی می کردند. حالا همه اون رو به اسم شیخ معروف جیانی می شناختند. کم کم بندر علی معروف شد. طوری که حاکمان تمع کار همسایه به فکر ملحق کردن اون به قلمرو رو به خودشون شدن و عاقبت یکی از اونها به شهر حمله کرد و به حاکم بندر علی اعلان چنگ داد. حاکم بندر علی لشکر کوچیکی رو فراهم کرد و برای دفاع از شهر اونها رو بسیج کرد. بعد هم به آداب و رسوم اون زمان شمشیر سنتنتی رو توی میدون شهر گذاشت تا هرکس که حاضر شه و جلو بیاد و اون رو برداره فرماندهی لشگر رو در برابر دشمن متخاصم براحته بگیره. سه روز گذشت و کسی جلو نیمد. طوری که حکرمان نگران شد و امید نجات قلم روش رو از دست داد. در طول این وقایع زن شیخ معروف کاملا مراقب اوضاع بود و خیلی مهرمانه درباره قدرت سپاه دشمن اطلاعاتی رو جمع کرد. بالاخره زن و شوهر فکرهاشون رو روی هم ریختن تا بتونن نقشهای ترک کنن و پیروزی و عظمت مجدد رو برای شاه اون قلمرو کسب کنند. صبح روز چهارم شیخ معروف و زنش هر دو با زره و کلا خود به میدون شهر اومدن و شمشیر سلطنتی رو پرداشتن. تموم مردم شهر اونها رو تشویق کردند. این خبر شادی بخش به قصر حاکم هم رسید. شاه شیخ معروف را به داخل قصر دعوت کرد و دستور داد که فرماندهی لشکر باشه. اون متواضعانه تقاضای خودش رو اعلام کرد و خیلی زود با اون موافقت شد. درخواست شیخ اجازه ورود به میدون جنگ بود. اون همه سربازه و جوانای آماده جنگ رو جمع کرد و طبق نقشه قبلی به دشمن حمله کردند. اونها رو غاویل گیر کردن و دشمن شکست سختی خورد. شاه از این پیروزی بزرگ خیلی خوشحال شد طوری که هدایای زیادی برای فرمانده لشکر فرستاد بعد از جنگ شیخ معروف به دربار فراخونده شد زنش که دقیقا مراقب اوضاع بود و برای همچین لحظه لحظه شماریم کرد از شیخ معروف خواست که هیچگونه طلا و جواهری رو به عنوان پاداش قبول نکنه بلکه از شاه بخواد که نوع جایزه رو خودش تعیین کنه زن جایزهای درخواستیش رو به اون گفت شاه که با حضور تمام درباریان روی تختش نشسته بود برق خوشحالی در چشمهاش میدرخشید اون با شکوه و جلال خاصی شیخ معروف رو به حضورش پذیرفت و با احترام در کنار خودش نشوند بعد هم شروع به تعریف و تمجید از شجاعت اون کرد و گفت که قادر نیست جایزه‌ای به اون بده که ارزش کار اون رو داشته باشه با این حال هر چیزی که بخواد به, به اون میده به این شرط که توی هیته قدرت اون باشه شیخ معروف با فروتنی جلی حاکم تعظیمی کرد و گفت قربانت بشم با لطف و انایت خدای بزرگ و لطف شما من هر چیزی رو که یک انسان لازم داشته باشه در اختیار دارم. جسارت می کنم ولی اگه اجازه بدین از شما بخوام که اجازه بدین از همه کشری های بازرگانی که توی بندر علی لنگر می مالیات بگیرم. هنوز این کلمات از دهن شیخ معروف بیرون نیومده بود که با خواستش موافقت شد. حکم اون نوشته شد و روی یه صفحه طلایی حق شد و به دستش داده شد. از اون به بعد همه کشتی های تجارتی که به بندر علی وارد می شدن قبل از ترک بندر مجبور بودند که به شیخ معروف مالیات بدن. هر روز اسامی کشتیهایی که توی طول روز به بندر علی وارد می شدن آماده می شد و اصره همون روز به شیخ تحویل داده می شد. بعد اون وزنش مبلغ مالیاتی رو که هر کشتی باید پرداخت کنه تعیین کردند. روزها و و هه موها می اومدن و می تا اینکه یه روز کشتی های شاهزاده بازرگان کشمیری توی اون بندر لنگر انداختند مالیات هایی رو که هر کشتی باید پرداخت میکرد مشخص بود ولی برای این شاهزادهی بازرگان وضع مشخص نبود اخر زنی شیخ معروف اجازه نمیداد تا تکلیفش رو مشخص کند و وضع شاهزادهی بازرگان بلا تکلیف بود. به این ترتیب چند روزی گذشت ولی زن شیخ معروف اصلا اجازه نمیداد که درباره اون و کشتیهاش تصمیمی گرفته بشه. شاهزاده بازرگان که دیگه از بلا تکلیفی جونش به لبش رسیده بود خواست که به خونه شیخ معروف بره. این کار رو کرد. خدمتکاری که برای همین منظور خاص تربیت شده بود دوان, دوان به سمت خانم خانه رفت تا ورود شاهزاده بازرگان رو به اون خبر بده. خانم سریعا به طرف شوهرش رفت و چیزی در گوشش گفت. بعد شوهر رفت که همام کنه. خدمتکارا از شاهزاده بازرگان محترمانه پذیرایی کردن و اون رو به اتاق کنار همام بردن و از اون خواستن تا منتظر بمونه. وقتی که شیخ معروف کارش تموم شد، در همون رو باز کرد و پاش رو بیرو گذاشت تا کفش کفشهاش رو بپوشه ولی با ناامیدی متوجه شد که کفشهاش نه تنها سر هستند بلکه از دسترس اون هم دور هستند. خدمتکار مخصوصش رو صدا کرد جوابی نیمد زن خدمتکار رو صدا کرد باز هم جوابی نشنید بالاخره زنش رو صدا کرد ولی اون همون نزدیکه ها نبود دوباره و دوباره صدا زد و باست هم جوابی نیومد. مرد بازرگان که این واقعه رو میدید و میدونست که باید برای خروج از بندر علی باید اجازه شیخ رو داشته باشه بلند شد و جلو اومد. کفشها رو برداشت و اونها رو در دسترس شیخ معروف گذاشت. ولی قبل از اینکه شیخ معروف بخواد تشکر کنه یا مذارت خواهی کنه زنش خنده کنن جلو اومد. اون که توی طبقه بالای خونه بود و همه چیز رو میدید، فریاد زد آه بازرگان مغرور ما این مد رو که جلوی تو وای ساده رو می میشناسی؟ حالا به من بگو که درست میگفتم یا نه در این زمان که شاهزاده بازرگان متوجه شد تا با نقشه اون رو وادار کردند تا کفش‌های چوپان رو جلوی پاش رفت کنه مرد از کار خودش پشیمون شده بود برای همین با ناراحتی فریاد زد. آی خانوم جان تو سر حرفت بودی ولی بدون که روزهای گرفتن مالیات توی بندر علی به سر اومده و به زودی تموم میشه. زن گفت مهم نیست. ما حرص مال دنیا رو نداریم. فقط میخواستم که بدونی انسان ها توی محیطی که تربیت میشن و همون حالت ها هم رفتار میکنن. تو نباید به خاطر رفتار فقیرانه کسی رو تحقیر کنی.